سی و نهومین حدیث فرمودی رسول الله صلی الله علیه وسلم اطیارت و شرک طیاره تطیور یعنی بدبینی، بدگمانی، شومی شرکه اصغره، نه شرکی که از انسان اسلام خارج بشه و کسی که تطییر بکنه، بدبین باشه نسبت به اون چیزی که سبب نیست سبب قرارش بده این شخص دشوار شرک از غر شده و جز کسانی میشه که محروم میشه از وارد بهش شدن بدون حساب چون در هم میگفته از آن فاورد بدون حساب از جمله اون اشخاص همون لذی نلایی تطییرن تطییر نمیکنن ولای اکتبوند داغ نمیزنن ولای استرکون نمی نمیکنن و علی رب میته بلکه توکل میکنن عدم توکل تتیربد بینی مثل گذاشتن مثلا بال پرنده ای رو کف دست و, و فوت کردنش خب اگر این ورف خوب اگر این ورف این ورف شره از کجا فهمیدی که شره ما سبب یا شرعی داریم و غیبی داریم یا سبب حسی داریم سبب شرعی الله بیان کرده که مثلا در حب سودا در عسل شفاست ولی که من بیان بگم خاک مثلا فلان شهر خاک فلان قبر مثلا شفا بخش از کجا فهمیدین دلیل از قرآن سنت یا اینکه طب و پزشکی و علم روز ثابت کرده که آقا این دارو هست به عنوان یک دارو مثلا مصرف میشه نه که با تجربه بگیم که آقا من رفتم پای این درخت نمیدونم خانمم حامله نبوده از برگ این درخت کناری فلان خورده حامله شده نه این سبب نیست که مثلا ما بگیم آقا چون رفته پیش این درخت یا پزشکی ثابت بکنه علم پزشکی که آقا این موثر طبیب بگه این برگ شفابخشه یا اینکه علم غیب بگه و در غیر این صورت اگر چیزی که سبب نباشه سبب قرارش بدیم دچار شرک شدیم این سه تا مثالی که من زدم تَتَیُر بدبینی مثلا میگیم آقا کلید به هم نزن شر میشه شب ناخورد نچی این چهارشنبه یا ناخورد این فلان چیز میشه یا شب ناخورد نچی که مثلا پنجشنبه سفر نرو که فلان قضیه رو خواهد داشت یا کسی اثر صبر و ماده نافسار نکن اینها همش جز, جز بدبینی هایی هست که جز شرقیات و ما در مقابل اون مافذ میشیم و این جز گناهان کبیره هست نباید بدبین بشیم نه این ماشین خریدم تصادف کردم پس نحسه یا رفتم بیرون تصادف کردم پس امروز روزود شریه اینا همه جز شرکیاته باید معواظب باشیم. نه فلان کس باقدم این بچه مثلا فلان من بدبخ شدم پس این پاقدمش بده نمیدونم فلانه یا فلانی پیشه اومد فلان حاضث بچم فلان افتاد. این جز تتیور و بدبینیه و چیزی که سبب نیست ما سبب قرار دادیم. و دوچار شرک شدیم چون فلان کس اومده چون فلان چیز خریدم نه من این لباس وقتی خریدم دعوا شده این جز شرکه چون این لباس پوشیدم فنان اختلاف پیش اومده با شوهرم نه این یا با همسرم این یا با فرزندم یا فلان اتفاق افتاده با خریدن فنان چیز اینا جز شرکیاته و باید ازش برحذر باشی جز گناهان کبیره هست و همچنین داغ گذاشتن الله تعالی مسئله قلبیه یا داغ گذاشتن بی داغ می‌ذاره آیا میدونی که واقعا این داغ رسونا داغ گذاشته می دونست که این شفا می نه اینکه انسان سرش میکنه شکمش میکنه داغ می خب چه داره و همچنین طلب رقیه کردن نه تو دم یا اون نفست گرمه از کجا میینه نفسش گرمه نه تو بخونی آدم صالحی فلانی با جان شفا در خود قرآنه شفا در خود قرآنه نه در شخص نه اینکه از از این اعتماد به فلان مله و شیخ داشته باشین نه تو بیا رو من بخون نه اگر این کارو کردی اعتماد به شخص کردی نه کلام الله اینجا هست که تو چه شرک شدی وسیره قرآنه قران خدا گذاشته که شفا بخش بشه قرآن كشفاء بخشة نا نفسه ونقرم أم الله ونشيخ بعد مدنزلهم وشه قد واند القرآن مكما ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للعالمين الآن القرآن نازل كذلك كشفاء وشفاء رحمة برهم ولا يزيد ظالمين إلا خسارة بس اینا سه چیزی هست که حالا به عنوان مثال زده شده ها یعنی فقط تنها این نیست گفتم مثلا طیاره وقتی گفتیم شرکه تیور تا بدبینی همه حالا چه کلید به هم زدن چه نمیدونم غوری رو تلف فلان کردن دعوا میشه فنام میشه اینا همه جزات طیاره هست یا ناخوشیدنی یا همه جزء مسائلی است که به قلب برمیگرده چیزی که سبب نیست ما که سبب قرارش دادیم اعتقادمون پیدا کردیم دو تا رو شرکه ازغر شدیم و گناه کبیره شدیم این مسئله قلبیه هر مسئله قلبی باشه و با چه مسئله بخواد قولی باشه طلب رقیه کردن چه مسئله بخواد فعلی باشه نوکم چون ایمان قوله و عمله و نیات یا اعمال قلبی و چه بخواد دوگ گذاشتن که فعل باشه کسی این اعمال را بدون سبب انجام بده دوچاره توکل شده و علی رب بمیتوکلون از توکل اینکه ما اسباب بگیریم نه اینکه بدون سبب یک کاری را انجام بدیم بس حذر باشیم و خود رو محروم نسازیم از اون کسانی که وارد بهش بشن میشن بدون حساب الله همه رو بدون حساب وارد بهش کنه و هیچ ذره عذابمون نده